الا بستون 18 مه 2008 پس از جرباست با دختر بزرگ و شوهرش محیط خانه چنان پرتنش شده بود که الا مدتی نتوانست ملت عشق را بخواند انگار درست میانشان مدت زیادی دیگی در حال جوشیدن بوده و یک دفعه درش را برداشته بودند و همه بخار و فشار داخلش بیرون زده بود. قهرهای جدید به دلخوری های قبلی اضافه شده بود. متاسفانه آن در نحس را هم کسی برنداشته بود جز الا. چون به اسکات زن زده بود، و گفته بود در تصمیمش برای ازدواج با دختر او تجدید نظر کند. مقدر بود خیلی بعدها از حرفهایی که در این مکالمه تلفنی زده بود به شدت احساس پشیمانی بکند. اما در آن زمان نه. در آن روز ماه مه، آنقدر از خودش مطمئن بود که طوری حرف میزد انگار به کوهای استوار تکیه دارد و کوچکترین عیبی در این نمیدید دید که در زندگی دیگران مداخله کند. با صدایی بیغم خونسرد و راحت پای تلفن گفت سلام اسکات منم الا مادر جانت طوری حرف می زد که انگار تلفن کردن به دوست پسر دخترش در نظر او جزو وقایع عادی است. اگر فرصت داری کمی با هم حرف بزنیم. اسکات که به تتپته افتاده بود گفت: خانم روبینشتاین، چه سورپرایزی؟ البته بفرمایید. با آنکه خیلی حیرت کرده بود، کوشید ادب و نزاکت را رعایت کند. همان موقع الا با همان ادب و نزاکت به اسکات گفت که هیچ خورده ای از او ندارد برای همین نباید از حرفهایی که قرار است بشنود دچار سوء تفاهم شود اما باید بداند هنوز برای ازدواج با دخترش خیلی جوان است علاوه بر اینها هنوز بیکار و کم تجربه است شاید این مکالمه تلفنی قلبش را بشکند و احساساتش را جریه دار کند اما خیلی زود میفهمد که الا چه میخواسته بگوید و به او حق میدهد. حتی چون به موقع چنین اختاری داده بعدها از او تشکر هم خواهد کرد خیلی بهتر است که موضوع را بی سر و صدا فیصله بدهد علاوه بر این خوب است درباره این مکالمه تلفنی حرفی به جانت نزند. الا یکی یکی اینها را گفت. از آن طرف تلفن هیچ صدایی نمی آمد. سرانجام اسکات قدرت حرف زدن پیدا کرد و گفت: خانم روبینشتاین، به گمانم شما ما را درک نکرده اید. جانت و من هم همدیگریم. بیا و درستش کن بفرمایید باز هم همان حرفهای های ای، الله تعجب کرد که آدمها چطور می توانند این قدر صاف و ساده باشند انگار اگر دوتا دل یکی شوند دنیا بهشت برین می شود یا عشق مثل عصای سهرامیز است که با یک زربه همه چیز عالی می شود اما الله چیزهایی را که در ذهنش میگذشت نگفت. اینها را گفت. پسرم می‌فهمم چه احساسی دارید. اما هنوز خیلی جوانید. از کجا معلوم یک وقت می بینی فردا عاشق کس دیگری شده ای؟ خانم روبینشتاین لطفاً به حساب بیعدبی من نگذارید. اما اگر چنین احتمالی باشد؟ برای همه هست حتی برای شما از کجا معلوم؟ یک وقت می بینید فردا شما هم عاشق کس دیگری شده اید. الا خنده عصبی کرد. من زنی خانه دارم انتخابی کردهام که تا آخر عمر پایش می نیستم. شوهرم هم همینطور چیزی هم که سعی می به تو بفهمانم همین است اسکا. ازدواج تصمیم ساده ای نیست. باید با جدیت و دقت همه جوانب را سنجید. سکات پرسید یعنی شما الان دارید به من توصیه می کنید که چون ممکن است روزی عاشق کسی دیگر بشوم آدمی را که امروز دیوانوار عاشقش هستم ترک بکنم؟ صحبتشان بعد از این فرقی با قل خوردن از سرازیری نداشت انتظارهای متقابل درد دلها یعسها متلکها همه با هم مخلوط شد سرانجام تلفن را که قطع کردند دستهای الله از عصبانیت میلرزید فورا به آشپزخانه رفت و کاری را کرد که هر موقع دلش میگرفت میکرد غذا پختن نیم ساعت بعد شوهرش تلفن کرد. باورم نمی شود الا. شنیدم به اسکات زنگ زده ای و گفته ای با دخترت ازدواج نکند. مگر همچو چیزی ممکن است. خواهش میکنم به من بگو که چنین کار احمقانه ای انجام نداده ای. لحظه ای نفس الا بند آمد. تو را خدا ببین خبرها چه زود پخش می شود. خیلی خوب، درست است، زنگ زدم، اما اجازه بده توضیح بدهم. اما دیوید در وضعیتی نبود که اجازه چیزی را بدهد. نتوانست جلو خودش را بگیرد. حرف الا را قطع کرد. چی را می خواهی توضیح بدهی؟ چطور توانستی همچو کاری بکنی؟ اسکات قضیه را برای جانت تعریف کرده. دخترت داغان شده میخواهد چند روز پیش لورا بماند تو را نمیخواهد ببیند دیوید پس از کمی من و من کردن حرفش را زد اگر از من میپرسی کمی هم حق دارد که اینطور احساس بکند چرا اینقدر توی زندگی همه دخالت میکنی آن شب فقط جانت نبود که به خانه نیامد دیوید با تلفن همراهش برای الا پیام فرستاد که کاری فوری پیش آمده و نمی تواند به خانه بیاید. توضیح نداده بود که این کار فوری چیست. قبلن هیچ وقت چنین کاری نکرده بود. رفتارش با روح زندگی زناشوییشان منافات داشت. از این گلمی پرید و روی آن گلمی نشست. این که آشکار بود، احتمالاً با زنهای دیگر ارتباطاتی داشت، حتی مشت مشت پول خرش میکرد برای آنها، به هر ترتیب الا به همه اینها عادت کرده بود، اما تا آن روز پیش نیامده بود، شوهرش شب به موقع خانه نیاید و موقع شام پشت میز سر جای همیشگیش نباشد. میانهشان هرقدر هم که بد بود الا برای او قضا میپخت. دیوید هم هرچه توی بشقاوش میگذاشتند با تبسم و تشکر می خورد و هر بار پس از غذا حتما از صمیم قلب میگفت دستت درد نکند. الا هر وقت این سه کلمه را میشنید با خودش میگفت شوهرش سربسته از او معذرت خواهی میکند. و می بخشیدش. همیشه بخشیده بودش الان اما شوهرش برای اولین بار مثل آدمهای از همه جا بی خبر رفتار می کرد الا برای وضعیت پیش آمده خودش را مقصر می دانست. اما راستش همیشه خود را مقصر دانستن و بار اشتباه های دیگران را به دوش کشیدن بخش جدایی‌ناپذیر شخصیت الا روبینشتاین شده بود. وقتی با دو قلوها پشت میز نشست، احساس گناه جایش را به افسردگی داده بود. نه به پا بر زمین کوبیدن ایوی برای پیتزا سفارش دادن توجه کرد، نه به اینکه اورلی نمیخواهد چیزی بخورد. به هر دوشان تا خرخره نخود فرنگی و سبزی آب پس خوراند. در نگاه اول هنوز همان مادر همیشگی بود که به بچه هایش نهایت توجه را میکند و تنابها را سفت توی دستش نگه داشته. حالان که در درونش خلعی بود که روز به روز بزرگتر میشد. شد. سرحال نبود. حوصله هیچ چیز را نداشت. انگار آبستن خلع بود. هر دقیقه و هر ساعت که میگذشت گذشت، درونش کمی بزرگتر می شود. حتما روزی می زایید. مجبور میشد با احساساتش رو در رو شود. اما نمیدانست در آن لحظه چه باید بکند. بعد از شام بچه ها به اتاقشان رفتند و الا پشت میز تنها ماند سکوتی که اطرافش را گرفته بود لحظه سنگینی کرد و دلش زیر بار اوهام له شد غذاهایی که آن همه برای پختنشان زحمت کشیده و وقت گذاشته بود یکباره به نظرش بیهوده و بیمزه رسیدند حتی بیان که متوجه بشود دلش برای خودش میسوخت در آستانه چهل سالگی بود، چهل سال توی این دنیا گذرانده بود، ترسید که نکند زندگیش را بیهوده به هدر داده باشد. با آنکه محبت بیپایانی در وجودش داشت و میخواست ایثارش کند، کسی از او محبت طلب نمیکرد. ذهنش به طرف ملت عشق رفت. شخصیت شمس تبریزی توجهش را جلب کرده بود. با حالتی نیمه شوخی زیر لب گفت کاش برم کسی مثل او بود. به زندگیم رنگ می بخشید. این را که مطمئنم. یک دفعه در ذهنش مردی اسرارآمیز، قد بلند موسیا چشم و ابرو با شلوار چرم و کاپشن موتورسواری جان گرفت. آن وقت اگر این مرد موهای سیاه افشان تا سرشانه‌ها داشته باشد و سوار هارلی دیویدسون قرمز رنگ هم بشود، دیگر معرکه است. بی اختیار به تصویر توی ذهنش لبخند زد. صوفی موتورسوار سوار و جذاب و اسرارآمیزی که در بزرگراهی خلوت با حد اکثر سرعت میراد، اگر الان برود کنار جاده و اتو استاپ بزند و هم‌چو مردی او را سوار ترک موتورسیکلتش بکند، خیلی محشر می شود. مگر نه؟ با خود گفت: اگر شمس تبریزی فال مرا می گرفت، در گذشته چه می دید؟ آیا می توانست توضیح بدهد که چرا بعضی وقتها ذهن و فکرش اینطور زیر سایه عبرهای سیاه نگرانی و تشویش قرار می گیرد؟ می توانست بگوید با آنکه خانواده پر جمعیتی دارد چرا خودش را تنها و بیکس کس حس می کند؟ الا کنجکاف شد یعنی در اطراف خودش هم حاله است اگر هست چه رنگهایی دارد رنگهایش درخشانند یا مات و کدر اما مگر این اواخر در زندگیش چه چیز درخشانی بوده اصلا چیز درخشانی بوده درست در آن لحظه همانجا الا روبینشتان مادر سه فرزند که در نور ضعیفی که از اجاق گاز میتابید تک و تنها پشت میز آشپزخانه نشسته بود متوجه چیزی شد هر قدر هم که پا بر زمین بکوبد و انکار کند هر قدر هم که بر زدش از این در و آن حرف بزند، مدت هاست که جایی در اعماق وجودش محتاج عشق است، در حسرت عشق می سوزد.